دوران امامتشون 17 سال طول کشید عمر شریفشون 25 سال به خاطر همین جوانترین امام ایشون هستند در زمان امامتشون با دو دوتا از خلفای عباسی یکی معمون یکی معتسم علیه ملعنت و العذاب معاصر بودن در بین ائمه اولین امامی هستند که در سن خردسالی به امامت رسیدن اولین امام هستن که در سن خورد سالی به امامت رسید لذا مهمترین موضوعی که در مورد امام جواد علیه السلام مطرح میشه سن ایشونه که آیا امام خردسال ما داریم یا نه میشه یه امامی خردسال باشه میتونه یه کودکی در سن طفولیت رهبری و رهبری یه امتی رو به عهده بگیره آیا این مطلب در امتهای گذشته سابقه داشته یا نداشته؟ برادرام این،, ار این بحثی که در دوران امامت امام جواد علیه السلام مطرح شد یه گرداب اعتقادی بود نه عوام جامعه شیعه بزرگان و علمای شیعه تو این دام گرفتار شدن که میشه آیا یه امام در سن خردسالی سالی به امامت برسه یا نه به خاطر همین یه بار مسئولیت سنگینی رو دوش جواد الائمه خرد ساله که امامتش رو ثابت بکنه حالا به نظرتون چرا باید از جواد العمه بعد امام هادی بعد امام عسکری تا امام زمان امام خوردسال باشن چرا باید این اتفاق بیفته من یه مثال بزنم این مسئله حل میشه که چرا امام تو سالی باید از امام جواد به امامت برست تو سنی کودک شما ببینید حضرات معصومین از امام جواد علیه السلام دیدار عمومیشون رو با مردم کم میکنن دیگه مثل علی ابن رضا نمیان بشینن دیدار عمومی داشته باشن نمیان تو جامعه زیاد خودشون نشون بدن امام حادی بیشتر از امام جواد علیه السلام خانه میرن داخل خانه اصحاب که میان از پشت پرده باهاشون با مردم صحبت میکنن امام عسکری علیه السلام میشه فقط اصحاب خاص سخونه راه میدن به غیر اصحاب خاص دیگه با کسی ملاقات عمومی ندارن چرا؟ همش برای زمین سازی برای امامت حضرت صاحبه که شیعه عادت کنه امامش پشت پردست یعنی چی تا قبل امام جواد علیه السلام خب تو جامعه بودن و با مردم هش رو نرش داشتن همه فکر کنن قرار امام بعدی هم اینجوری باشه اما همینجور دیداره ها کم شد تا یک دفعه با امامت امام زمان که غیبت اول سغرا بعد کبراست مردم بحتشون نزنه سوال بشه. همین جوابو برای خردسال بودن ائمه قبل از امام زمانم دارن به کار میبرن میگن یعنی یک دفعه مردم چجور میتونستن باور کنن که یه امامی مثل امام زمان چار ساله یا پنج ساله به امامت برسه به خاطر همین پدرش باید تو سالگی به امامت برسه پدر بزرگش امام هادی باید تو سن خردسالگی به امامت برسه ابن الرزا جواد الاعمم باید سن خوردسالی این یه در سطح جامعه این مطلب حل بشه که اگر امام تو سن خردسالی دیگه سوالی نباشه اما بار این مسئولیت با امام جواده اگر خوب جواب بده این قضیه تو جامعه حل بشه دیگه کسی برای سؤال ایجاد نمیشه دیگه نمیاد کسی بگه آقا چرا امام هادی در سن خردسالگی به امامت رسیدن؟ دیگه وقتی امام حسن است که امام حسن به امامت میرسن تو جامعه گرداب اعتقادی ایجاد نمیشه چون امام جواد مسئله رو حل کرد بارش رو دوش امام علیه السلام حالا به نظر شما امام جواد السلام چجوری باید در سن سالگی امامت خودش رو ثابت بکنه قبل از اینو امام رضا علیه السلام هم این قضیه رو حل کردم اومد خدمت امام رضا علیه السلام تو یه جمعی نشسته بودن راوی میگه امام جواد سه ساله بودن یکی از اصحاب رو کرد به امام رضا علیه السلام گفت یابن رسول الله اگر خدای نکرده یه اتفاقی برای شما بیفته شما از بین ما برید بعد از شما به کی باید رجوع بکنیم میگه امام رضا امام جواد علیه السلام بغل کرد گفت فرزندم جواد امام بعد از منه میگه بند خدا یه دفعه سن کم امام مطرح کرد گوه بچه میخواد امام ما باشه امام رضا علیه السلام یه آیه قرآن خوند شما میتونید از این آیه استدلال کنید فرمود ایسابن مریم وقتی به پیغمبری رسید خیلی از جواد من کچیکتر بود در گهواره به امام به پیغمبری رسید سوره مریم آیه سی حضرت مریم وقتی حضرت عیسی رو در آغوش گرفت آورد به ایسا وقتی به مادرش تحمت زدن که تو بدون اینکه ازدواج کرده باشی بابات آدم خوبی بود مادرت پاک دامن بود تو چرا خطا کار شدی اشارت الی اشاره کرد به گهواره احبار و علمای یهود گفتن ما رو مسخره کردی حواله ما رو به یه طفل در میدی عیسی به زبان آمد آیه سی سوره مریم قال انی عبد الله الکتاب من بنده خدا هستم به من کتاب داده شده بعد در زیل این آیه روایت از معصومه که عیسی مسیح در وقتی در جهواره بود به مقام نبوت رسیده بود نبی بود هفت سالگی به منصب رسالت رسید اینو امام علیه السلام ب... بعد امام رضا علیه السلام فرمودن ما خاندانی هستیم که کوچکتر سغار ما کوچکترای ما از بزرگتراشون مو به مو عرص میبرن یعنی چیزی کم ندارند علی ابن اسبات هم یار امام رضای هم یار امام جواد اومده بود دیدن امام جواد در سن کودکی خوردس همینجور زل زده بود تو چهره امام خودش میگه میگه داشتم چهره امام رو تو ذهنم حکم کردم وقتی رفتم مصر برای اهل مصر بگم چهره امامتون اینجوریه یه پرانتز امام جواد علیه السلام در سن سالگی تو مصر هم محب بشیه داشتم میگه همینجوری که زده بودم به سیمای آفتابگونه جواد العمه گویا امام جواد ذهن منو خوند که مثل این که تو ذهن من داره میگذره چجور میشه یه بچه امام باشه میگه همین که این به ذهن من رسید امام فرمود ای علی ابن اسبات کاری که خدا متعال در مسئله امامت انجام داده مانند همون کاری که تو قضیه نبوت انجام داده یعنی چی فرمود یحیی پسر خاله عیسی علیه السلام خدا تو قرآن تو سوره مریم آیه دوازده میفهمد و آتینا هول حکمت سبیه صبیا یعنی بچه‌ دختر کوچک صبی یعنی بچه حکم یعنی نبوت عیسی مسیح در سن عیسی مسیح تو گهواره به اما به پیغمبری میرسه یحیی در سن کودکی این دومین پیغمبری که قرآن میگه در سن کودک. گاه پیغمبر دیگه جواد برای علی ابن اسبات پیغمبر بعدی رو نام برد کیه؟ حضرت یوسف ولما بلغ اشدهو آتینا حکمن و علما وقتی که به کمال رشد فکریش رسید ما حکم, ما حکم نبوت رو به او عطا کرد بعد یه جمله فرمود فرمود همون گونه که ممکن خدا علم و حکمت رو تو سن چل سالگی به یه نفر بده همونو میتونه در دوران کودکی هم به کسی بده این سندش توی کتاب کافی مرحوم کلینی پس با آیه قرآن امام استدلال کرد اما بعضی تو جامعه نمیرفت تو کتشون هرچی هم دلیل قرآن میومد ما نمیتونیم باور کنیم بچه امام باشی آقا اومد تراغ علماء گلوی علماء بزرگان فقه های شیعه رو گرفتا ریانه مرثیط میگه تو خونه یک از بزرگان شیعه جمع شده بودن همه برای امام رضا داشتن نوحه و عزاداری مجلس ختم و گریه بود میگه یکی از بزرگان شیعه وارد شد گفت دست بردارید از این گریه و زاری بلشین بریم ببینیم امامتون کیه تا وقتی این بچه بزرگ بشه میگه همین که اینو گفت یونس بن عبدالرحمن بلند شد اونم از فقهای شیعه است جلوی اینو گرفت شروع فشار دادن میزد تو صورتش میگفت پس تو ایمانت رو در دل ایمان اصلا نداشتی شک و شبحت و نسبت به امامت تو دلت پنهان کرده بودی اگر خدا بخواد امامت رو میتونه به یه مرد صد ساله بده اگه همون امامت از جانب خدا باشه میتونه به تفل تو گهواره باشه اینجوری دامن علما گرفته بود که حالا امام علیه السلام باید چیکا کنن؟ میگه همون سال ایام حج نزدیک شد 80 تا فقیه فقیه به معنای فقیه ها مرجع تقلیدی درم میگم از بغداد و شهرهای دیگه به سمت خانه خدا اومدن اومدن مدینه خونه امام صادق علیه السلام خالی از سکنه بود 80 تا فقیه اومدن خونه امام صادق که مناظره کنن با جواد و لحن. میگه همینجوری که نشسته بودن در باز شدی در فیدن یکی از اولاد موسی ابن جعفر اموی جوادالعیمه به نام عبدالله ابن موسا وارد جلسه شد یه نفرم گفت او فرزند رسول خداست هرکس هر سؤالی دارد از او بپرسد به سلامتی شما عبدالله ابن موسا نشست صدر جلسه هرکی هر سؤالی پرسید ایشون اشتباه جواب سؤالاش تو تاریخ اومد. آقا اگه کسی فلان کارو انجام بده حکمش اینه اعدام فقیه رنگیش به اعدام نداره که ای با... یه مسئله دیگه ای کجا این پرسه حرامه آقا کجای این آقا انقدر این پسر امام کاظم عبدالله ابن موسی که فکر میکرد فقیه و جانشین امام اشتباه جواب داد همه عموم شیعه پجمرده شدن فقه ها مضطرب شدن بلند شدن برن گفتن اگر جواد حرفی برای گفتن داشت و امام بود میومد. اومد اموش میگه می همین که در حال بلند شدن بودن فقه ها میگه از صدر جلسه یه بابی باز شد میگه یه غلامی اومد اسمش موفق غلام امام جواد علیه السلام گفت ایها الحزار جواد العم جعفر داخل میشد میگه همین که این جمله رو گفت هشتاد تا فقیه ریش سفید بی اراده جلوی پای امام جواد به پا بلند شدن استقبال کردن سلام و سلباد امام جواد تشفرونه صدر جلسه. میگه همه فقها شروع کردن از امام خورد سال ما سؤال پرسیدن جواباشونو کامل و جامع دریافت کردن لبخند رضایت به لب تک تکشون اومد رو کردن به امام بودن آقا پس اموتون اینجا پس چیکار میکنن امام علیه السلام رو کرد به عموش گفت امو جان فردای قیامت جلوی خدا قرار بگیری ازت سوال بپرسن تو جامعه داناتر از تو بود و تو پاسخ دادی چی میخوای جواب خدا رو بدی این تو این مناظره امام علیه السلام برای شیعیان مطلب رو حل کردن نوبت دشمن باشه معمون میخواست امام جواد رو به عقد امول فضل در بیاره عباسی ها اومدن گفتن که نمیذاریم این کارو بکنی علی ابن موسر رزا رو میخواستی جانشین خودت بکنی بعد اون جریان ولی اهدی رو ما چیزی نگفتیم اندفه دیگه نمیذاریم مأمون خیلی باهوش بوده آقای اون بین این خلفای اموی و خلفای راشدین یه فرقی باید گذاشت مثلا شما ببینید خلیفه ببینی خلیفه سوم مثل عثمان این یه آدم لایشعوری بوده بیشعوری بوده واقعا امیرالمومنین تو خطبه شخشقیه بخونید وقتی در ابوبکرو رو میگه در دوران او چه اتفاقی افتاد در دوران دومی چه اتفاقی افتاد وقتی به سوم میرسه مطلب عوض میشه حضرت میفرماد او کارش این بود مسیر رفت آمدش آشپس تا بیتالخلا خلا دست روی اینجا میخورد اینجا میداد. یعنی یه آدم اینجوری بود فقط به فکر شیکم بود شیکم پرست اما شما نمیتونی این حرفو در مورد خلیفه دوم بگی او باهوش بوده با تدبیر اومد مسیر اسلام اسلامو منحرف کرد بیگدار به آب نزد منصور خلیفه عباسی اینجوری بوده آدم باهوش و زیرکی بود معمونم اینجوری بوده خودش جز یکی از دانشمندان اسلامی بوده کو دلیل شما بر اینکه که نمیذارید من جواد الاعم به عقد ام الفص در بیارم چیه؟ گفتم به خاطر اینکه او او که از علم دانش هیچ بهره ای نبرده. گفت خب مناظره بذارید. مناظره بذارید ببینید او در خردسالی حریف شما میشه یا نه. گفتم باشه. کیا دعوت آقای آقایون میدونی کیا دعوت کردن؟ بزرگ فقه های بقداد اسمش یحیی ابن اکسمه یحیی ابن عکسه. عظمت علمی او که معمون خودش اهل علمه مبهوت یحیب نکسمه تو علم فقیه هست قاضی بغداد هست امور محاسبات و دارایی و رسیدگی به فقرارم داده بهش نوشتن در اما یه ضعف بزرگی که داشته هیچ بوی از معنویت نبرده بوده علم و دریافت کرده بوده فقط برای شهرت برای مقام برای فقر برای برتری جویی میگن تو منزلش هر کسی میومده از علوم مختلف انقدر سؤال میکرده از مخاطبش تا بگه آقا ما غلط کردیم به عجز و ناتوانیش اقرار کنه از این دعوت کردم معمون نشسته هزار نشستن امام جواد خردسالم سالم داخل جلسه شده اومد بن نکسم جلو معمون یا امیر المومنی. بپرسم از ایشون سؤالاتمو گفت برو از خودشون اجازه بگیر اومد جلو جا یا ابا جعفر اذن پرسش به من میدید حضرت فرمود از هرچی میخوای سوال کن آقا میدونید دست رو چه ای گذاشت از چهل پنجاه باب فق یه باب فق از همه پیچیده تره. اونم باب حجه بیست و تا شرط محرم داره تو کفار حشت انقدر این حج پیچیده است قسمت اعظمی از کتب فقهی رو به خودش اختصاص میده چون پیچیدگی زیادی داره خواست جواد و لعیمه رو به قول کشدیگی را پیچ کنه ضربه فنی اومد جلو امام جواد علیه السلام سؤالش رو اینجوری مطرح کرد یاب نرسول الله نظر شما در مورد کسی که محرم بوده محرم کسی که دوتا هوله سفید رو میدازه میبنده میره برای حج این میشه محرم نظر شما در مورد شخصی که محرم بوده در همون حال حیوانی رو شکار کرده چیه؟ این سوال رو پرسید از امام امام علیه السلام در پاسخ چگونه باید علم... میتونستن جواب بدن؟ تا اما باید علمیت رو بروز بده باید نشون بده امامه حالا باید جواب بده امام ببینید چجوری اومد تو گوه رو کرد به یهیب نکسم یهیب نکسم مسئله رو برای من روشن کن آیا این شخصی که شکار رو انجام داده در هل بوده؟ یعنی خارج از محدوده حرم بوده؟ یا در حرم این شکار رو انجام داده؟ دو عالم به حرام بودن شکار بوده در حال احرام یا جاهل بوده؟ سه امدن کشته یا از روی خطا کشته چهار آزاد بوده یا برده بوده پنج صغیر بوده یا کبیر بوده. شش اولین بارش بوده که این شکار رو انجام داده یا چندمین بارش بوده. هفت شکار او از پرنده ها بوده یا غیر پرنده ها بوده. هشت از حیوانات کوچک بوده یا از حیوانات بزرگ بوده. نه باز هم میخواد این کار رو انجام بده یا از کرده ی خودش پشیمانه ده در شب این شکار رو انجام داده یا در روز یازده در احرام عمره بوده یا در حج واجب بوده. اللهم صل على محمد و شما یک لحظه چهره ی یبن و تصور کنید. فقط یک لحظه چهره این فقیه رو ترسیم کنید تو تو. کیشو مات میگه این که این همه باد کرده بود. امامو به شکل یه بچه میدید گفت فداتون بشم. استفاده میکنم از معظرتون امام علیه السلام شروع کردن همه رو گفتن اگر بچه بوده کفاره نداره اگه در خطا کرده مثلا اینجوری اگر حیوان به غیر پرنده بوده کفاره مثلا فلان حیوان دونه دونه براش گفتن صدای تکبیر توی جلسه معمون بلند شد روکات گفت دیدید گفتم اینا بچه هاشون از بزرگترشون مو به مو عرض میبرن معمون به بغ... شما یک از خ... بزرگان می بود مأمون شیعه امام کشه از امیر المومنین تو جریان این که در سن قبل از تکلیف ایمان آورده به پیغمبر مأمون استدلال آورده برای دشمنو. اما خودش شیعه امام کشه حالا یه جریان داره بعداً حالا بگیم این جریانشی مأمون دیدید گفت گفتم بهتون یه چند دقیقه جلسه گذشت امام جواد علیه السلام باز بعد نشون بده سن جنو بی یحیی بن میدید حالا من یه سوال از شما بپرسم آقا فداتون بشم بلد باشم جوابتون میدم بلد نباشم از محضرتون درس میگیرم بعد امام یه باب فقهی رو براش باز کردم باز یحیب نکسم مثل قاشق تو اصل دوباره گیر کرد و امام قضیه رو براش با... یه سوالی حالا تو قضیه فقه اینجوری امام علی همین یحیب نکسم همین کسی که در ظاهر مغلوب میشه اما کینه به دل میگیرن این آدم میگه در مدینت رسول بالا قبر رسول الله جوادالائم رو دیدم یک عالمه سوال شخصا ازش پرسیدم بعد گفتم آقا یه سوال میخوام ازتون بپرسم روم نمیشه ازتون بپرسم امام علیه السلام باز باید برای او معجزه کنن فرمود یحیی ابن عکسم قبل از اینکه سوالت رو بپرسی میگم چی میخوای بپرسی میخای از امامت بپرسی گفت به خدا قسم میخواستم از امام خودم بپرسم فرمود من هستم امام تو گفت آقا من اینجوری راضی نمیشم اونجا هم برام مناظره مغلوب شدن معجزه برام بیار میگه یه چوب دستی تو دست امام جواد علیه السلام بود میگه به سخن آمد گفت همانا مولای من امام زمان من اوس حجت الله علی الخلق اوص باز هم گفت اللهم صل علی محمد و آل باز ایمان نیاورد اینم یه مدلش اما عرض آخرم یک جور دیگه ام امام شیعه درست کرده شما میدونید امت اسلام از بین از بعد رسول الله که امت واحده بودن هفتاد و فرقه شدن هفتاد و فرقه به فرمایش خود رسول الله فقط هم یه فرقه نجات پیدا میکنن باقی همه حلاق شدن بین شیعه چار امامی داریم هفت امامی داریم کسانی که بعد بن جعفر امام رزا رو قبول ندارن اسمایل رو قبول دارن اسمایلیر هست بهشون زیدیه. یه هستن یه امامی هستن کیسانیه؟ اینا فرقه های مختلفن هست یک به نام علی ابن خالد. میگه من چهار امامی بودم میگه تو سامر را بودم سامر را اسم قدیمش چی بود علی آقا؟ سر من یعنی هر کسی اینجا رو میدیده مسرور میشده این یک لقبه. اما قول قوی تر اینه اینجا سامراه بوده حضرت نوح وقتی در اینجا بودن در مجاورت تمیرانمونم به خاک سپرده شدن جناب سام پسرشون به دیدار پدر که میومدن و برمیگشتن این, خی... این جاده شده سام راه یعنی راه سام اینم قول دومی که در مورد اصلاً کلمه کربلا شیشتا معنا داره سام راه راه سام بوده اینجا <تصفح> میگه من علی ابن خالد میگه من ز سامر را بودم دیدم یه زندانی رو تو قید و بند درن میارن گفتم چه خبره؟ گفتن ادعای پیغمبری کرده از شام آوردنش میخوان محاکمش کنم بردنش زندان میگه با خودم گفتم برم ببینم این حرف چیه؟ امام مثلا چندوم پیغمبر چندوم چه ادعای کرده؟ میگه اومدم دم در زندان با زندانبانوی برخورد خوش و ملایم و لطیف داشتم با نرم شدم گفتم منو رو پیش این زندانی من آوردم پیشش نگاه کردم بودن فهمیده ایه شش و 8 نمیزنه ادعای پیغمبر الان میگن اوین چند تا امام و پیغمبر و امام زمان و چند تا یه, یه سلول چند تا خدا اینا هستن چهرها معلومه رنگ رخصاره خبر میده سر درون میگه نگاهش کردم نه این آدم آدمواریه فهمیده است گفتم تو برای چی ادعای پیغمبری کردی؟ موضوع چیه؟ گو به خدا من ادعای پیغمبری نکردم گفتم داستان تو چیه گفت در شام یه موزه به نام راس الحسین علیه السلام میگه من اونجا سجاده عبادت هم انداختم مشغول عبادت بودم یه شب یه آقایی اومد به من امر کرد بیست ایستادم گفت پشت, پشت سر من بیا میگه به راه افتادم چند قدم برداشتم نگاه کردم مسجد کوفه شام کجا مسجد کوفه کجا به من گفت اینجا رو می‌شناسی گفتم مسجد کوفه مشغول نماز شد مشغول نماز شدم میگه نماز تموم شد گفت پشت سر من به راه بیفت راه افتادم چشما باز کردم مسجد الحرام مشغول طواف شد مشغول طواف شدم طواف تموم شد نماز طواف تموم شد گفت پشت سر من به راه بیفت به راه افتادم چند قدم راه افتادم چشممو باز کردم مدینت الرسول قبر رسول الله مشغول زیارت شد زیارت تموم شد گفت پشت سر من راه بیو راه افتادم چشمم رو باز کردم رسول حسین تو شام بوده همین که به خودم نا نیست میگه یک سال مبهوت که این چی بود ایشون کی بود جریان چی بود سال بعد همون روز همون لحظه دوباره همون آقا اومد بیست ایست ایستاد دنبال من حرکت کن حرکت کردم چند قدم برداشتم مسجد کوفه، چند قدم برداشتیم مسجد الحرام، چند قدم برداشتیم مدینت الرسول چند قدم رسول حسین برگشت همین که خواست بره گفتم تو رو به خدایی که چنین قدرتی به تو داده قسمت میدم، خودت رو معرفی کن یکی سرشنداخ با این سکوت معنادار سر بالا آورد فمود انا محمد ابن علی ابن موسب الله ما شاء الله الله من جواد الایما میگفت اینو گفت و رفت میگه ما یه می بی کردیم به یکی از رفقامون گفتیم جریانو دیدی میخوای قضیه فاش نشه به یکی بگو ببین اینو بهت میگم به هیشگی نگیم نگی یا میگه دمه در نصیر رسیدی که اهل مسجد دونستان رضا اگر میخوای مطلبی رو منطق بدونن یه قید بیار به کسی نگی یا بین خودم و خودت بدونه اینجا مخزن اسراره خودم و خاجعافظ شیرازی هیچ که دیگه نمیفن. میگه بهش گفتم به کسی نگی جریانو گفت باشه رف گذاشت دست جانشین معتصه محمد ابن عبد الملک زیاد. میگه اینم به جرم پیغمبری یه انگ به ما چسبوندن الان میخوان هرکی بگن مشکل داره میگن چیه؟ زد ولایت فقی به یه حیط گیر بدن عکس آقا خاملی نزده بود زد دولایت فقی هاینا ها دیدی دیدی آقا رو دعا نکرد میخوان یه بند خودایی رو کل پاش کنن انگار رو چسبوندن التماس دعا ایوین با کمپوت بیاید ملاقات آقا میگه گفتم من ادعای پی... میگه گفتم میخوای نامه بنویسم برای معتسم شاید یه کاری برات انجام بده گفت سنگ مفت گنجش مفت بنویس میگه چرحال من دو خود رو که اینجوری بوده اینجوری اینجوری بوده میگه جواب نامم اومد پشت نامه من نوشته بود برو بهش بگو همون کسی که تو رو از رسول حسین میاره مسجد کوفه چشم به هم زدنی میبره مسجد الحرام به هم زدنی مدینت الرسول چش به هم زدنی برمیگردون رسول حسین به همون آقا بگه از این بند آزادش کنه مطلک انداخ تیک انداخ میگه انقدر دل من شکست از این حرف چجور برم به این بند خدا بگم چی برم بگم گفتم با خودم فردا میرم یه دلداری بهش میدم او رو دعوت به صبر و شکیبایی میکنه میگه فردا صبح علت طلو اومدم دم در زندادم ولولهیه سربازو از این به اون ورد چه خبره؟ گفتن اون زندانی که دیروز تو به ملاقاتش اومدی قول و زنجیرش هست اما خودش نیست نمیدانیم به زمین رفته یا به آسمان پرواز کرده علی ابن خالد چهار امامی میگه همونجا به امامت جوادل ایمان آوردم و اعتقاد نیکو پیدا کرد ارزم تمام بین ائمه اطهار تو مظلومیت که میرسه غریب بودن امام مجتبا رو مثال میزنن و امام جواد میگن چرا؟ میگن هر چقدر آدم تو جامعه درد بکشه وقتی میرسه خونه همسرشو میبینه بهای سلام علیک بکنه دردش تموم میشه مثل آقامون امیر المومنی. تو جامعه اگه به علی سلام نمیکردن، اگر سلام میکرد جواب سلام علی رو نمیدادن میدونست الان بیاد خونه یه زهرا خونه است نگاه به چهره او بکنه غم و قصه عالم و از دلش بر میداره اما امام مجتبی علیه السلام تو خونش چنین کسی نبود امام جواد علیه السلام هم در خانه چنین کسی رو نداشتن ام الفضلی دوی این خونه است که جاسوس پدر تو خونه است اما رو یه چی بگم؟ من میخوام بگم امام جواد از امام مجتبی مظلوم تره. میدونی چرا امام, امام مجتبی علیه السلام اگر زنشون باشون مشکل داشت خواهری مثل زینب داشت برادری مثل سید و دارن اما امام جواد یک دانه امام رزاست نه خوهری داره نه برادری درد دلشو باید بره پیش کی بگه امام خیلی مظلوم من میخوام این قطعات شعری که آجلی آقای انسانی از دم جان جاندادن جوادالعیمه هست همین ساده میخوام بخونم براتون اینو بخونم و رفع زحمت کنم اون لحظه جان دادن رو داره به تصویر میکشه ببینید اون لحظه ای که امام ما امروز روزه بود وقتی خواست افتار بکنه تو کوزه امام زهریخ امام ما لب تو است تصور بکنید این فضا رو فذکر اتشال حسین <تصفيق> میگه تو این فضا هاجلی آقای انسانی این فضا رو ترسیم میکنه میان حجره چنان ناله از جفا میزد که سوز ناله اتاتش به ما سوا میزد شرار ز زه یک سویو سوز غم یک سو به جان و پیکرش آتش جدا جدا میزد نداشت شکوز بیگا و نگان بلب دم مرگ ولی داد ز بیداد آشنا میزد برون حجره همه پایکوب و دستفشان درون حجره یکی بود دست و پا میزد ستاده بود و ایستاده بود ستاده بود و جواب الائمه جان میداد، از او بپرس که زخم زبان چرا میزد یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله يا حجة الله الله خلقه يا سيدنا و مولانا اننا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الى الله وقدمناك بين يدي بین